بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم النبيين واله وصحبه أجمعين اما بعد افتو مين درس دروس تايي البيري رحمه الله واسكنه فسيح جناته بيتسي ويكم از كم كميغيد رحمه الله ولا تختل بمالك ولها عنه فليس المال الا ما علمت وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملء ويكتب عنك يوما إن كتمت الله ده نسخها شو مفكرة نبى إن كتبت الله إن شاء الله خايم كوفدار ولا تختل بمالك فدار بعض نسخها ولا تحفل بمالك ولا تختل ولا تحفل ولا تحفل بمالك إنها مغمة مولد نبشه شغل شاغلت، فکرت، مغمت مالت نباشه که تمام وقتت را بگیره همه اهمیتت مالت باشه، ثروتت باشه، پولت باشه شنانچه در دعا قبلا اشاره کردیم از دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همینه ولا مبلغ علمینه The Messenger of Allah said that they were doing this ختام المجلس church when they came to الله مقسم لنا من us ما the بي بيننا وبين will be in between us and between us They were saying that Allah is not going to lead the world The world is the most important The world is the most important thing in the world And the world is not the most important thing And not that we are علم ما مباشد چی کجا فلان چیز ارزون تر نیفروشن چی چسودی بیشتری داره چی بفروشیم چی نفروشیم چه کاری باز بکنیم چه تجارتی ربح چسودش بیشتره نیست انجام توصیه بلبری هست ولا تختل به مالک ولا تحفل به مالک فرق نمیکنه هر دو تا یک معنی رو دارن مغرور مالد نشو این مالد ترا فریب نده که همه ی همومت فکر مالد باشه ولا تختل به اختيال السكره از غروره از عجبه ولا تختل ولا ها عنه ولا ها عنه ولا ها عن يعني خواتكم ما يشغلكم بغير اسون بون شيء كبيت سود داره منفعت داره با اخرتت ولا ها عن هيك مخوتر بيخيالكم نسبه بون پول مال كم زينته فارغكم بجهس بون شيء كبنفع اخرته ودنيات هست بجهس الدين دي كام فليس المال الا ما علمت مال حقيقي علم نافع كثمرش عمله فليس المال حقيقه مال وثروه اون پول نیست که درمیاری حقیقت مال چیه الا ما علمته علمته این ثروته حقیقی این مال حقیقی علم شرعی این پوله این درآمده حقیقی در علم شرعی خیر دنیا و انسان با علم شرعی خیر و شرش میدونه بدی و خوبیش رو بده علم شرعی نداشته باشه انسان نمیتونه حلال و حرامش تشخیص بده علمی که مرا نجات میده علم را نجات میده احادیث در فضل علم طلب علم زیاد گفتیم از فرق کردن ملائکه بالهاشون و از مغفرت الله جل و حتی حتى اون کسی که در مجلس علم شرکت میکنه و بر راه بهش آسوده شدن آسود شدن اینا همه گفتیم از جمله مسائلی که اینجا مطرح میشه اون حدیثی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکنه اون شخصی که 99 تن را کشته بود میاد نزع عابدی فتوایی میخواد 99 تن را کشتم جایی برای توبم هست گفت که 90 تن را کشتی الان دنبال توبه ای میشه که اون عابد عالم نبود او را هم میشه صد تن کامل میره نزد عالمی اون عالم میگه من صد تن را کشتم آخرش هم اون عابد جای برای توبم هست عالمی میگه چرا تو به برات جا نداشته باشه چرا نتونی توبه بکنی هر چقدر گناه داشته باشی الله قفاره خب چیکار کنم که الله بامو قبول بکنه گفت که از اینجا برو به جای دیگر برو به شهر دیگر الى آخر حدیث که شما همه میدونید این عالم با اون علمی که داشت اون شخص راهنمایی نمایی میکنه هم خودش نجات میابه اگر مثل جواب میداد اونم میشه صده یکمی هم خودش نجاتی یافت هم اون شخص نجاتی یافت اون شخص زمانی که شروع میکنه به حرکت عجلش که فرا میرسه ملاکه میگن حالا چیکار کنیم این قبض روح که بخواد بشه جز جهنمیان یا بهشتیان دیگه الله جل وعلا میگه که نگاه بکنید به کدوم مسیر نزدیکتره او رو نزدیکتر بکنید به اون مسیری که فاصله رو نزدیکتر به اون جایی که میخواد توبه بکنه تا اینکه خاتمه به خیر بشه نجات یافت اون شخص با وجود که شیطان رو کشته بود یک عالم او رو نجات داد نه تنها توصیه کرد به توبه بلکه راه توفیق استقامت بر توبه هم یادش داد اگر الله در توبه رو بسته بود این شخص حتی کی زرتنا میکشت حالا قاتل توبه داره نداره قاتل توبه داره شرک هم توو بده داره کفر هم توو داره قتل که بدتر از شرک و کف نیست قتل بدتر از شرک و کفر نیست که توبه نداشته باشه که شرک و کفر توو داشت بله ابوبکر و عمر و اینا مشرک بودن الله توبهشون پذیره بله پذیروف اگر بسته بشه که قاتل دست از جنایت نمیکشه گناهکار دست از گناهش نمیکشه اینجا تفاوت بین عالم و عابد رو رسول الله صلی الله علیه و آله ما یاد میکنه چنچ هزار حدیثی داشتیم که قبلا هم به اشاره شد فضل العالم علی العابد سائر النجوم عالم مثل ماه تابانه ماه مهتاب در مقابل دیگر ستاره ها عالم علمش تو نورانی میکنه راحت رو نشون میده شب مهتاب توش نیست چند شب پیش ما اینجا اومده بودیم برمیگشتیم مهتاب نبود واقعا رانندگی کردنم حتی تو شب مهتاب نیست سخت شطوری بیاد از این و خصوصا تو جاده ایشون از این مهتاب نه دید یکم باسر میبینید جلو راه جلو رود عالم چینی خیر خوبی را از بدی و شر به نشون میده این خیر خوبه این شر این بده ثمره علم نجات خود عالم و نجات افرادی که از اون عالم اون علم را میگیرن قسم زمانی که اون علم سبب خشیت و ترس از الله بشه انما یخش الله من عباد العلماء دیگه شریف تر از این مقام بالاتر از این که الله جل و علا این چینی از اهل علم تمجید بکنه تعريف بكونه شرف علم انما يخشى الله يعني بدرسيك حقيقه طرزه هو ان داره حقيقه تعظيم الله راه عالم داره عالم الله را حق تعظيمش بجا مياره اين مدح اين ستایش الله جل وعلا علمينه هدف اس علم من طلب علم شو ما كن اسيت هدفتون بو آدمين باشه نيتتون بين خودتون و الله جل وعلا به الله جل وعلا نازيك مشي چنچ برها گفتی مشارکردین و این دائر هم تاکید میکنیم که فراموش نکنید صبحگاه ها اون دعایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه الله من یسئلک علما ان هل من افع سودش اولش به خودت برمیگرده خودت سودمن و دیگران اصلا هم سود میبرن خودت سود میبری نجات مییابی و دیگران هم سود میبرید ولیس لجاهلن فی الناس مغن ولو ملک العراق له تاتا و دار باس نصها ولیس لجاهل فی الناس معنا جهل مسعون عابد هم به خودش آسیب زد، کشته شد خودش سبب شد با جهلش فتوای اشتباهی بده شریک جور شد با اون قاتل که او را بکشه فتوای اشتباهش او را بکشتن داد درسته؟ جاهله جاهل اولین ضررش به خودشه و بعد به جامعهش در جاهل منفعتی نیست در جهل سودی نیست ولیس سل جهل ف ناسی مغنن جاهل برای مردم سودی نداره فایده نداره مردم از دست جاهل در امان نیستن کسی که جاهل باشه به احکام شرعی به حلال و حرام فحش بده، ناسزا میگه مال حرام میخوره جاهله ولی سل جاهله فی الناس معننم همونطور نزد مردم هم نداره اون جاهل یعنی عرضشی نداره بی معناس محلی از احراب نداره جاهل کسی سراغش نمیگیره. جاهل کسی کنی ازش کمک میگیره نه ازش سراغ میگیره نه به طرفش میره جاهله چه جاهل در امور دین چه در امور دنیا در امور دنیا اگر کسی مریض شد به جاهل مراجعه نمیکنه به پزشک مراجعه میکنه کمترین ما از لحاظ عقل و خرد هم میدونه این قضیه رو میتونه درک بکنه که یک شخص بی سواد در امور پزشکی خصوصا الا این قید نباید بهش مراجعه بکنیم در مریضی و درد دنبال با سوادش بود باشیم عالمش بود باشیم اون کسی که علم به اون تخصصش فنش داشته باشه در امور دین هم همینطور. در امور دین بعد مرجع ممکن باشه اهل علم اهل علم که تاسس الله جل وعلا دارن و داشتند ولو ملک العراق له تاثر اگر اون جاهل خلیفه‌ای از خلفا باشه پادشاهی از پادشاهان بر عراق باشه عراق خلافت عباسی توش مشهور بود خصوصا در زمان ابوحق البری بنی امیه خلافتشون در اسپانیا بود و بنی عباس مشرق و مغرب زمین این کشورهای اسلامی که به اسم اسلامی هست کشور اسلامی هستن در قلم روه خلافت اسلامی بودن چیزی به اسم نکشوری کشور ایران بود نه افغانستان بود نه پاکستان بود همه اینا جزه یک مملکت بودن یک قلم رو بودن خلافت اسلامی خلافت عباسی اینجا البری میگه میگه جاهل اگر پادشاه عراق هم باشه خلیفه ای از خلافای مملکت اسلامی که مرکزیتش پایتختش عراق باشه با اون ملک و سروت اون ملک و اون ملک سروت منفعتی نداره برای دیگران پادشاه جاهلی که بزرگترین قصرها را برای خودش می سازه و اموال و سروتها را زخیره میکنه. ولی دیگران ازش سود نمیبرند. به درد چی میخوره؟ به درد می خیلی در صورتی اون مملکت به درد می که عالم توش باشه خوصا در امر خزانه داری الله از جهت خیر خواهی به خلقش مثال یوسف را می در قرآن علیه الس یکی از وجه های سوره یوسفه از نیازمندی خلق به عالم و شد در اون دوره از زمانی که یعقوب علیه السلام در شام زندگی میکرد پایتخت دنیا مصر بود وقتی پایتخت دنیا گفته میشه معروف در کتابها گفته میشه مصر ام الدنیا مادر دنیاست حتی از اروپا میرفتن به مصر برای کسب علم از و دیگران رفتن به اونجا برای کسب علم و دانش تمدن مصر جز قدیمی ترین تمدن هاست الان نبینید که بعد از سلسله خروجهایی که تدبیر شد از اون خوارجی که خروج کردند بر علیه حکومت پادشاهی مصر مصر که جز عریق ترین ممالک روی زمین بود حتی ست سال قبل که کشور بریتانیا و انگلیز قرض می از کشور مصر برای هاش محتاج کشور مصر بود چهار تا جاهل جمع شدن و حاکمشون رو تکفیر کردن و خروج کردن کشوری که در عز و اوج تمدن بود مدنیت بود به مدنیات مدنیت رسوندن که مردمش الان خونه هاشون بشه قبرستون تو قب بخوابن خیمه بزنن تو قبرستون و تو گوشه و کنار قبرستون بخوابن جا و مکان منزل نداشته باشن جاهل مملکت را چنین میکنه فقیر میکنه حقیر میکنه مملکتی که عزیز بود حقیر شد ولی عالم مملکت را عزیز میکنه پادشاه مصر خوابی میبینه. مقدر کرده. احتیاجشون رو در یکی از خلق خودش قرار داده چنانچه احتیاج سلیمان را در یک مرشه قرار داده بود اینجا احتیاج اون مملکت را در یک پیغمبری قرار داده و ما رب که به ظلم الله نمیخواد بندگانش ظلم بکنه. اینکه یوسف به چاه انداخته شد خیر یوسف بود و خیر خلق ولی ظاهر امشر یک بچه بیگناه رو تو چاه انداختن ولی چه خیر و سودی داشت این انداخته شدن این در اند قافله ای او رو پیدا میکنه از اون و بیرونش میارن و دست به دست میکنن و میفروشن با اندرق قیمتی وزیر از بزرها میخره و بعد اون فتنه زلیخا میشه و بعد تعبیر خوابی تو زندان میکنه یوسف علیه السلام یکی از اون زندانیان که آزاد میشه در دربار میشنوه که پادشاه خوابی دیده پادشاه در این و اون میزنه من خواب دیدم این خواب ملکی نیست ای بزرگان جمع بشید دنبال کسی می گرده که براش تعبیر بکنه جادوگرم بهش گفتن الفاظ و احلام خوابای لکی بیوده است بلکه این چرندیاته ولی پادشاه یقین داشت که این خواب لکی نیست تا اینکه اون زندانی که آزاد شده بود میگفت که گفت بهش که من میتونم کسی را پیدا بکنم که تعبیر خوابت رو بکنه و راهنمایی بکنه نسبت به خوابت کی گفت که بذار من برم زندان رفت زندان اومد تعبیر خوابم یوسف میکنه یوسف را که رحمت الله جل وعلا ببینید در یوسف رحمتی بود برای برادرانش توبه کرده رحمتی بود برای امت مصر هم در دین هم در دنیا الله خیر خواه بندگانش و بندگانش رو رها نمیکنه درست اسیر شد زندانی شد ولی آخر اخر عزت سربلندی پادشاه خیریت خودش رو در یوسف میبینه محتاج یوسف میبینه یوسف تو بیا از این خواب چه برداشت کردی؟ شنید اول از اون زندانی که آزاد شده بود، شنید ولی گفت که نه بزار خود یوسف بیاد پس اون هفت گاو چاق و لاغه کمتون میدونید هفت سال قهدی و خوشتالی و هفت سال حاصل خیزی تدبیر میخواد این امر چطور تدبیر بکنم الان این خواب تدبیرش کردی چ چی پادشاه دست التماس یوسف محتاج یوسف مملکتش نیازم یک عالم داره یوسف نبود بود اون مردم چی میشدن حقیر میشدن ذلیل میشدن در اون قحطی خوشحالی میمردن جاهل چنین میکنه ولی این عالم جی چی چیکار کرد خزینه ها رو به من بسپور حساب کتاب رو به من بسپور آمارها رو به دست من بده بگم که شاه ورزا چیکونه و ذخیره بکنن گندم رو تو خوشه هاش بذارن که اگر موریانه خورد گندمه آسیب نبینه و اگر آبی وارد شد رطوبتی گندم خراب نشه که جا بیشتر میگیره امور دنیاشون تدویر کرد محل اعتمادشون شد الله به وسیله یوسف هم در دنیا راهنمایشون شد نجاتگرشون شد هم در امر آخرتشون الله به وسیله یوسف دعوت توحیدی را وارد مملکت پادشاهی مثل میکنه امتی را در دینشون نجات میده الله جلال با یک عالم ولی یک جاهل امت را رقم میکنه با یک فتواش دیگه مثال اون بنده خدا با کتاباش نمیارام که از بس که تکفیر کرده دیگه هی بگید که اسمشو میارم یک مثال. یک عالم امتی نجات میده و یک جاهل امتی را خار میکنه حقیر میکنه چقدر زندانی داشتیم چقدر کشته شدن تو این افغانستان به سبب چی بود به سبب همین بو کتاباش سید قطب این حرکت های به اسم جهاد و جهادی و القاعده و نمیدونم داعش و جبهه النصر است کجا, کجا رفتن الان دست برورده ی بودن حکومت امریکا عوض میشه که حکومت دیگر میاد دعوایی که بین جمهوری ها و دموکراسی ها و فلان و بهمان و بیسار سرمایه و حزینه کردن برای این فرقهای های تکفیری کم میارن برای دست میکشن آخرم میرن تا امت بفهمه که دست پرورده همون ها هستن اصله کی بهشون داد؟ کی کمکشون کرد؟ ولی مسلمان ها فری بهشون خوردن ما اینا جهاد میکنن اینا دارن با امریکا میجن موسلمانو جنگیدن، مسلمان ها را کشتن. تو سوریه دارن با آمریکا میجنگن یا تو عراق دارن با آمریکا میجنگن کجا با آمریکا میجنگن مسلمان گول فریبه شعار را میخوره یک جاهل اینها را اسیر جهل کرد، اسیر فکر کرد این چنین امت اسلام را زش جلوه داد، پدرشون پدرش مادرشون می‌کشه، خودشون دارن می‌کشن. امت اسلام فقط خونخاران، فقط خون می‌ریزن. چه چهره‌ای از اسلام گذاشتن برای غرب؟ غربی که باید ما اونها را شیفته ای اسلام بکنیم. خوبی های اسلام اومدیم از اسلام یک چهره بدی ساختیم یک چهره وحشی دیدید دیدی دیگم هایی دی که پر میکردن القاعده ارهه برقی رو میوردن سر طرف را با عاره برقی رو می بروریدن تاتار این کار رو نمیکردن با مسلمان جهل، این دو تا قیاس را این دو تا مقایسه را در ذهن خودتون داشته باشه جل چکار میکنه و هل چکار میکنه؟ و الله لطیف به عباده لطفا الله را می بینید در حقه پادشاهمثل امر دین و دنیا شو. الله خیرخواه بندگانش علم خیرخواهیه علم درش جز خیر چیز دیگر نیست هم تو را نجات میده هم امت را نجات میده علم خیر خیر دنیا توش هست و همچنین خیر آخرتش ولی جهل چی پادشاه هم باشی مملکت به دست باشه جاهل باشی جهل اون جهلت مملکت را ویران میکنه اون جهلت مملکت را ویران میکنه سيمت قوحن که علمك في و ويكتب عنك يوما ان كتمته او وان كتبته الا كم معناي خواهد پیدا کرد با این مصرع آخری سينطق عنك علمك في ملائمه سينطق عنك علمك نميگم ولا بق عالمي فلاني يا عالم اين اون يوسف عليه السلام كلام اسمش اومد و علم تعبير خابي که داشت اسمش جاودانمون يا نمون موند سينطق عنك علمك علمش شرفتين شرفت را پیدا بکنه اسم هيچ كدم از برادرا الله نياره جز يوسف 11 تنبؤات اسبيتش قدوره الله نائب القران فقط اسم يوسف روورد بخاطر شرفش بخاطر علمش يوسف از بقیه برتر و بهتر شد سينتقا عنك علمك في ملأ دار ملأ دار بر سر منبر ها اسمت قهادماس علمي سر شريف میکنه تو مجلس شسي میگه ابن العثيمين و الفبانی گفت ويكتب عنك يوما فمين يشينن بخاطر اون علمت یک روزی اسب بنویسن ان كتبت ويكتب عنك نوشته میشه از تو گرفته میشه حالا چه بنویسی و چه بگی به مردم و اما در مصحفی که من دارم اجازه خط در ازق شرح میده و یكتب عنک یوم ان کتمته و یكتب عنک شیخ عبد میگه ای یكتب الیک میگه حروف جر متناوبه اینجا عن به معنی الیک هست و یكتب الیک یومن إن كتمت أجر علمت كتمان بكوني تم أخذني شيء. دار حديث سري من سؤال عن علم فكتمه ألجمة يوم القيامة بالجامة من النار. الله دار روزق قيامتهم كسي أن عالمك علمك كتمان بكوني الله جل وعلا عذابش مدة دار جهنم. وان عذاب عردنك. فاللهم جل وعلا لا عنت ميكونون عالمك كعلمك كتمان إن الذين يكتمون ما أنزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لا ان الذين يتمون عاقبت كتمان علم سخته اولاك يلعنهم الله ويلعنهم اللاين بس كتمان علم عقوبات السخط داره شلون الله جل وعلا گفتيم آدم را آفرید بخاطر علم بخاطر آموزش و آموختن و وجه برتری ادم بود بر فرشتگان درسته آدم را که آفرید بخاطر علم بود حالا فرزندان آدم اهميت به علم ندن از ذهنشون و سخنان الهی چیزی نمیآموزن وما يغنيك تشييد المباني اذا اذا بالجهل نفسك قد هدمت وما يغنيك تشييد المباني عمرانيه وابادانيه ري زمين با ساختمان سازي واپارتمان وما يغنيك تشييد تشييد المباني يعني اپارتمان سازي ساخت و ساز وما يغنيك بدردت ميخوره چی به دردت ميخوره اگر تو جاهل باشي و 100 تا اپارتمان و 10 تا اپارتمان داشته باشي توی که عل نداری با اون جهلت حق اون اونو میخورین دیدید که دیگه تاجر با پارتی و زیرمیزی و رشوه شهری و روسی به تصرف خودش در اینجا بلود ریخته اینجا سنگ ریخته اینجا مال منه اینجا مال منه. کس کسی ام نداره نزدیک بشه هرچی پول و ثروت بیشتر تمع بیشتر نصف شهر میبینی مال کی فلانی چرا یا دهیاره یا جزء شهر جل خوبه چهار تا فقیر و چهار تا جوان الان دنبال زمینه کجا درست بکنن خونه برای خودشون؟ کجا زندگی بکنن؟ حقشونو کی خورده؟ تاجر محتاج زمینه؟ جوان دویسم زمین نداره، ولی اون تاجره یک هکتار زمین برای خودش کچی کرده. متر و دیویسمت هم که راضی نیست. ارث پدریش هم که نیست. جهل زول میاره. جهل زول میاره. حقوق دیگران را پایمال میکنه. و ما یغنی که تشید المباری اگر بالجهلی که قد هدمته تو توی کومدی لطمه ای را بر خودت وارد کردی نفس خودت ضربه این چین سخت به خودت زدی با اون جهلت با اون حرمم خورید اون آپارتمان سازید به درتت میخوره میگه با خودت میبری تو قبرت آخرت این ساختمان ها میان به دادت میرسن مگه چه به دردت میخوره؟ اگر تو اومدی با جهلت حقوق دیگران رو پای مال کردی همون مردم میان یک قط روز قیامت میگیرن میگه مال حرام گوشت جونت میشه حساب جونت میشه. در این دنیا قبل از آخرت غیر از این که در آخرت رسول الله صلی علیه و وسلم میگه اون گوشت جان و تنی که از مال حرام پرورش بیابه، بیا به, و اولا به فکر کردی زورت رسید این زمین رو برداری تصاحب کنی فکر کردی الله غافله واللهی بدون چنان وعیدی که الله جل و علا به فرعون داده به تو هم داره میده الله برای هر ظالمی در کمینش نشسته همونطور که میگوید این ربک لبل مرصاد در کمینه تبع کاران و ظالمین الله نشسته فکر نکن زرنگی فکر نکن که میتونی چه پاول بکنی و میتونی به حوزه خودت در بیاری اون زمین اون ملک حالا میخواد این زمین و ملک مثال بود میخواد لند قایقی هر مالی از مال دیگران باشه حق دیگران را ضایع بکنی پس انسان با جهل خودش نابود میکنه آخرت خودش نابود میکنه و یک دلداری برای اون مظلومی که اون جاهل ثروتمند اگر حقش رو خورده الله حقش رو ازش میگیره. یک دلداریه. الله ازش غافل نیست. الله ازش غافل نیست. در صورتی الله هم حقته رو میگیره که تو بندگیشو بجا بیاری. تو بنده خوب خدا شدی مثل یوسف. ولی با صبر حوصله زندانی شدی، تو چه انداخته شدی بدون که عاقبتت به پیش الله عزیز باشی، الله رو داشته باشی همه چیز رو داری. ولی الله رو نداشته باشی چی نداری. الله با تو باشه تو غمی دیگه نداری. چه غمی بر تو وقتی که الله با توست و یار و یاور توست. همون لحظه ای که یوسف علیه ستاسم تو چه انداخته میشه الله میگه که من با یوسفم. از یوسف غافل نیستم. همچنین زمانی که فروخته میشه الله جل و میگه یوسف از دید ما غایب نبود. او را به چش داشتیم. الله با بندگانش هست در صورتی که بندگان با الله باشه. قیده. در صورتی که بندگان با الله باشه. ولی یه چیزی هم اینجا با اوزاره حتی اگر ظلم به ظالم باشه اگر اون ظالم مظلوم واقع شود در غیر حقش ظلم کردی به ظالم در غیر حقش حق فلانی رو خورده ولی تو بیایی ماشین شوهاتش بکشی رسول الله صلی الله علیه و سلم گوشزد میده تقو و دعوه المظلوم بر حذر باشید از چی دائم مظلوم کسی که مظلوم واقع بشه که بین مظلوم و الله حجابی نیست حتی هر چند اگر کافر هم باشه بدین هم باشه به کسی ظلم جعلت المال فوق العلم جهلا لعمروك في القضية ما عدلتا سي بيت از توسيهاش به رفیق يا یا توسيهاش به كحب مال و رو داریم وفکر میکنیم مال از علم بهتره برتره ميگه جعلت المال فوق العلم مالو بهتر از علم دني. شو مردی اشتباس جهله جعلت المال فوق العلم جهلا انجهله كتو مدی مالو بهتر از علم دونستی تو منزلت علم رو نفهمیدی جایگاه علم رو ارزشی قرآن فهمیدی اون صاحب علم چه جایگای نزالله رو داره چه شرفی داره چه مقام نزالله چه پاداش براش گذاشته تو جاهلی نسبت به اینها لعم که فی القضیه ما عدلتا لعم رو که ازباب تأکیده نه ازباب قسم اختلاف هست البته بین لغوی ها خاشق حماد انساری رحمه الله میگه نز عرب این باب تأکیده و با قسم نیست چون گفتم قسم دیگه میشه قسم به غیر خدا قسم به جانت یعنی داره میخوره به جان ما یا به جان اون ابو بکر ولی خب اینجا قسم نیست تأکیده توی که می جانت جانتی قد عزیزه جانت برات مهمه در این مسئله در این قضیه تو عادل نبودی توی که اومدی ما را ترجیح دادی بر علم چرا؟ چون و بینهما به نسل وحی بونون ستعلمه اذا چون بین علم و مال فرق و تفاوت بسیار بزرگیه یکی در شرق یکی در غربه تفاوتشون مسافتشون با هم دیگه خیلی بسیاره تفاوتشون بزرگه چه موقع ما میتونیم این تفاوت را بفهمیم؟ راه میکنه برای اینکه تفاوت را بفهمیم بین و ثره و ثریا یک از مثال هایی که عرب میزنه تفاوت بین زمین و ماه مثلا چه تفاوتی فرق و تفاوتی که بین زمین و ماه ما خشک آب نیست؟ جنگلی نیست محل زندگی نیست ولی زمین چی؟ زمین محل آبادانی زندگی آب باران دریاس، ماهی کلی حیوانه ولی اونجا چی هست؟ برهوت خالی هیچ خالی لخت اوریان قطر آبی هم توش نیست ماه و زمین با هم دیگه قابل قیاسن، خیر اصلا ماه محل زندگی نیست همین تفاوتم هم بین علم و بین مال. ماه تلا هم باشه به رنگش که شب محتابه. تلا هم باشه. با علم قابل قیاس نیست که آبه علم مبارکه هر جا بباره سرسبز میشه بستان میشه خاصلخیز میشه مثل زمینی که اینچینین با آب زنده شده علم آبادانی میاره ولی اون تلا آبادانی نمیاره اون ماه تلا هم باشه محل زندگی روش نیست فرق بین ماله و علم ست علمو میدونی و میتونی بدونی اذا طاها قرأتا اگر سوره طه را بخونید درست بخونی تلاوت بکنی سوره تاها میتونی درک بکنی اینجا شیخ عبدالرزاق عباد الله حفظش بکنه یک مثالی را میزنه از سوره طه چهارده میگه شاید مد نظرش این آیه باشه فرمودی الله جل علا و قر رب زدنی علمه میگه الله جل علا نگف بر رسول الله صلی سلام بگو که مالم رو زیاد کن افزون کن بلکه گفت علمم را بسیار زیاد کن و قر رب زدنی علم نه گفت زدنی این ارزش علمه علم چون ارزش داره الله جل و علا بر رسولش صلی الله تسلی می که تو علم را الله بخوانا دنیا و مال. لئن رفع الغنی لواء مال لانت لواء علمك قد رفعت. اگر اون ثروتمند پرچم مال و ثروتش رو بالا بکنه، بالا ببره، لانت لواء علمك قد رفعته اگر اون پرچم دار مال و دنیاست، تو پرچم دار چی هستی؟ علم. تو سرت بلنده با اون علم. تو سرت بلنده با اون رهروی از راه انبیا تو سرت بلنده که راه انبیا را پیشه گرفتی اون محبوب ترین خلق الهی که آفریده و بر روی این زمین گذاشته سروتمن رهرو روی راه کیه؟ راه کی را گرفته؟ ای طالب علم بدون راه تو راه پیغمبران و محبوبین الهیه اونهایی که الله اعلان محبتشون کرده و در قرآن از اونها به عظمت و بزرگی یاد کرده تو پیشوا و الگود پیغمبران الهی هست ولی اون تاجر خیر برای خودش پیشوا و الگوی نداره مال بد نیست ولی که به خوبی علم نمیشه به پای علم نمیرسه وقتی که ما میدونیم خیر تو علمه چرا بیام وقتی خودمون بدیم به فزونی در مال از علم غافل بشیم وقتی که میدونیم این کالای گرامبه هاست این جوهر بی و گرامبه هاست چرا بیایم؟ غافل بشیم از این گرانبها بریم به اون چیزی که ناچیز و پسته از اون خاشاک دنیا که گفتیم رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایا دنیا ملعونه دنیا ملعونه و بول پشی ان پشی الله جل و علا ارزشی نداره لا ان رفع الغنی لواء مال لانت لواء علمک قد رفعت لانت لواء علمک پرچم علمت رو بالا بردی علم پرچم داره پرچمشم قل هذه سبیلی ادعو إلى الله على بصيره الله بيش بيجي بقية محمد مصطفى صلات والسلام هذه سبيل إن روح من أدعو إلى الله أدعو باكي على بصيره با علم إن دوتا باها من نكو علمي آموزم نمي آموزم نعم دياران نا قل هذه سبيل أدعو إلى الله هدفت دعوتت بسوي الله جل وعلا واشه يعني هدفت از زندگي از نفس کشيدنت هادي سبيلي راه منيش من زندگي من راه روش من هادي سبيلي در اين دنيا راه منيش من اگه چوما دمبالي اگه راه راه راه من محمد مصطفي هستيد الله بهش ميگه بگو به امت كه چي راه منيش من چيه ادعو الى الله دعوت ميدم بسوي الله راه منيش من دعوتي بسوي الله ولي با جهل يا ابو علم بو علم علا با جهل مثل ان عابده ميشه خودشو بكشتن و قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره كافيس بر شرفته كالله جل وعلا ترى مشمول پيروان محمد مستفاكر اگر ان دوتا چيز در تو باشه علم و دعبته بسوية الله جل وعلا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني منو پيروانم شرف لياقته که الله ترا جزء پیروان محمد مصطفی قرار بده در دنیا که بعد بهش ملحق بشه در اون آخرت و اون لیاقت و اون شرف به رسول الله صلی الله وسلم و salam بودن رو پیدا بکنی اگر می اون لیاقت رو پیدا بکنی دو تا شهرت علم و دعوته به علم مردم از خیر علم تو بهره ببرن از اون حدیثی از اون آیه‌ای که یاد گرفتی بشنون یاد میگیرن یاد بدی هدف اینه تاناک الله بحمدک سبحان بحمدک صلی